لطفا در مورد کار در حیعت بفرمایید و چه کنیم وظیفه هر فرد توی حیعت چیه حیعت داری کار واجبه از جاتی شرعی ها تو حیعت شرکت کردن یک کار مستحبه ولی اونایی که دستن در کار هیئت هستن چرخاننده یه حیعت هستن کار مستحبی انجام نمیدن ها لازمه وقتی شروع میکنن لازم حیعت رو بگردونن یا نباید جلو بیادردن وقتی من جلو درگیری شد دیگه باید به پایان برسونن علتشم دلیل محکم شعائر الله هست از شعائر الهیه دستور سریح و روشن داریم که شعائر الهی رو داشته باشید و حفظ کنید در فقه حیعت اومده اینایی که میرن عربین عربین رفتن مستحبه پیادروی زیارت عربین اما کسایی که دستن در کار عربینن برشون واجبه ها نمیشه که امسال بعد نیست بیدیم اگه شروع کردی به کار باید دوره سال آیندن برید دوباره سال بایدن برید اگه کار رو دوش این هاز واجبه از شرعی حیت هم همینطوره حالا ها احمد دلش بخواد چیه دلش نخواد محسنیه رو باید کنه حاج حسین همینطور حاج احباس همینطور دیگران همینطور کسایی که دستشون دیگه احیا شده لنگ بذاری کار واجب ترک شده برای بچه که کمک میکنن و ازشون کار برمیاد و شروع کردن باید با تحمل با صبوری. کار انجام